در این زمان رفیقی که خالی از خلل است سراحی مه ناب و سفینه غزل است جرید رو که گذرگاه آفیت تنگ است پیالگیر که عمر عزیز بی بدل است نمنز بیعملی در جهان ملولم و بست ملالت علما هم زه علم بیعمل است به چشم عقل در این رهگذار پر آشود جهان و کار جهان بی ثبات و بی محل است بگیر طره محچه ریی و قصه مخان که سعد و نحس زه تاثیر زهر و زهل است دلم امید فراوان به وصل روی تو داشت ولی دی عجل دره عمر رهزن عمل است به هیچ دور نخواهند یافت هوشیارش چونین که حافظ ما مست باده ازل